یرامیان درود بر شما فایل آوایی 11 از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 148 عنوان مبارزه تسلیحاتی در مسیر توسعه صلاح اول اتحاد آن دستگاه روحانیتی که توانست با زد و بند سیاسی و یا به هر هیلتی عدیان دیگر را از میدان بدر کند و همه آموزش دین را به دست گیرد و جامعه را از لحاظ دینی یک دست نماید عملا باعث میشد شد که بیشترین نسبت از مؤمنین به یک دین یگانه در جامعه ظهور کنند. اتحاد بین روحانیت و حکمرانان که به این دستگاه روحانیت مشروعیت قانونی می دادند و نیز حرف شنوی تمام و کمال مردم از روحانیون موجب اتحاد هرچه بیشتر مردم در برهی جنگ میشد و این اتحاد اولین سلاح جامعه بود. سلاح دوم بهشت تزمینی دومین سلاحی که در این مبارزه تسلیحاتی به وسیله دین فراهم میشد. داستانهای مربوط به زندگی بعد از مرگ و جایگاه و مقام اخروی بیمانند کسانی بود که در جنگ کشته میشدند. روحانیون می‌توانستند هر جنگی را به عنوان جنگ مقدس معرفی کنند و کشته شدن مؤمنین در آن جنگ را تزمینی برای راهیابی آنها به بهشت عنوان نمایند. شوق کشته شدن در راه ایمان در کنار کسب منافع مادی و قنایم جنگی سلاحی بس کارآمد بود و می توانست پادشاهیها و امپراتوری های دیگر را از پا درآورد. سلاح سوم خود کنترلی سومین سلاحی که دین و روحانیت به جامعه خود میدادند سلاح خود بود یادآوری پی در پی خدا. آن ذاتی که برتر از ماست، داناتر از ماست و همیشه خواست ما در برابر خواست او بی ارزشتر و بی اهمیتتر است، موجب می گردد افراد مؤمن به تمایلات و آنچه دلخواهشان است کمتر اهمیت دهند و در سختی دیرتر بشکنند و طاقت خود را دیرتر از دست دهند. کوین راندینگ روانشناس از دانشگاه کوینز کانادا به همراه همکارانش مطالعه‌ای ترتیب دادند تا تأثیر یادآوری مفاهیم دینی را بر قدرت خود کنترلی شرکت کنندگان بسنجند. آنها داوطلبان را به دو گروه تقسیم کردند. به هر گروه کلماتی داده میشد تا با آنها جمله بسازند. کلمات گروه اول به گونه انتخاب شده بود که از لحاظ دینی جملاتی خونسا با آنها ساخته میشد مثل او یک قطار دید یا من آن را پست کردم کلمات گروه دوم به شکلی انتخاب شده بود که نیمی از جملاتی که آنها می توانستند بسازند مفاهیم مذهبی داشت مثل خدا را شکر کن یا آن کتاب مقدس بود سپس از افراد هر گروه خواسته میشد در آزمونی شرکت کنند که در آن می باست 20 فنجان هرکدام محتوی یک اونس مخلوط چندشابر آب پرتغال و سرکه را سر میکشند و البته برای هر فنجان پنج سنت میگرند که پول زیادی نبود آنها هر زمان که میخواستند می, خواستن می دست بکشند. تعداد فنجان هایی که می سر بکشند نشان دهنده قدرت خود آنها بود. منظور از خود سرکوب کردن یا نادیده گرفتن حس بدی بود که از نوشیدن آن ترکیب به آنها دست می‌داد. نتیجه این شد که گروه دوم که به شکلی ناخداگاه به یاد مفاهیم مذهبی و خدا افتاده بودند، توانستند حدود دو برابر بیشتر از گروه اول احساس بد خود را هنگام نوشیدن آن ترکیب نادیده بگیرند و حجم بیشتری بنوشند. جنگ ها همیشه هزینه های مالی و جانی برای مردم داشت و با خود کمبود و گرسنگی و همراه می اینکه مردم چقدر می توانستند خود را نادیده بگیرند یا تمایلات و نیازهای خود را در برابر خاست خدا کم اهمیت تلقی کنند مهم بود و می توانست نقشی استراتژیک در ادامه تحمل شرایط سخت جنگ را بازی کنند. مقاومت و تحمل روانی بیشتر یک گروه نسبت به گروه مقابل می توانست باعث تعیین نتیجه جنگ گردد صلاح چهارم بیرحمی صلاح دیگری که دین به جامعه اشهدیه می داد بیرحمی در مقابل دشمن بود روحانیون نه تنها به راحتی گروه های دیگر را بیگانه و غیر معرفی میکردند، بلکه این غیر انسانسازی را در قالب باورهای دینی تئوریزه می کردند و کاری می کردند که دا قرنها ادامه داشته باشد و باعث گردد مؤمنین به راحتی خون اقوام رقیب را بریزند و از نیروی کار آنها در قالب بردهداری استفاده کنند برتری نژادی خودی بر دیگر نجادها یا برتری مؤمنین دین خودی بر مؤمنین دیگر ادیان یا برتری افراد آزاد بر برده ها و کنیس به عنوان امری ذاتی، سرشتی و یا الهی توصیف می شود. و این باعث میگردید گردید که مؤمنین نه تنها خود را معید به تأییدات الهی بدانند و خود را پوشتگر به حمایت خدا یا خدایانشان حس کنند بلکه به راحتی هرچه بیشتر به خشونت دست بزنند چرا که از نظر آنها دشمنانشان ذاتاً شعنی پایین تر از آنها داشتند. در این مسیر روحانیون معمولاً پس از اینکه قوم و نژاد و یا همدینان خود را برتر از بقیه معرفی می‌کردند، جایگاه خود یعنی جایگاه طبقه روحانیت را نیز در بالاترین رتبه و یا فقط یک پله پایینتر از پادشاه معرفی می کردن و صاحب مزایای ویژه می شدند. معمولا در جهان هایی که ادیان و روحانیون به جامعه ارائه می کردند، پادشاه و طبقه روحانیت در بالاترین جایگاه قرار داشتند و حق فرمانروایی و هدایت از آن آنها بود و سپس همدینان یا هم آنها بیشترین حقوق و مزایا را به دست می آوردند. کسانی که از ادیان و نژادهای دیگر بودند و نیز بردگان کمترین حقوق و مزایا را در دولت شهر یا پادشاهی یا امپراتوری داشتند. البته انسان ها و نیز بعضی از نخستی ها ادالت طلبند و تبعیض را تحمل نمی کنند. یکی دیگر از ریشه های تکاملی اخلاقی در هوموساپینس و دیگر نخستی ها نیز همین عدم تحمل تبعیض است. یعنی انسان‌ها و نخستی‌ها در وهله نخست خود را شبیه هم می‌دانند و انتظار رفتاری یکسان و عادلانه نسبت به خود و دیگر هم‌نوعانشان دارند. سارا بروزنان از دانشگاه اموری آتلانتا و فرانس دووال به میمون‌های کاپوچین قهوه‌ای یاد دادند که های پلاستیکی بدهند و غذا بگیرند. ابتدا میمونها از اینکه ژتون میدادند و خیار میگرفتند خوشحال بودند اما اگر آنها میدیدند که یکی از میمونها در ازای دادن ژتون انگور تحویل میگیرد ولی آنها خیار تحویل میگیرند عصبانی میشدند و دیگر ژتون نمیدادند و یا خیار را قبول نمیکردند حتی بعضی از آنها خیار یا ژتون را به بیرون از قفسشان پرتاب میکردند میمون ها اگر میدیدند یکی از هم حتی جیتون هم نمیدهد و انگور میگیرد دلخوریشان بیشتر هم میشد و در چنین حالتی 80 درصد آنها به شکلی دست به شورش میزدند شواهد کافی در خودمان و جوامع انسانی داریم که نشان میدهد این حس در ما انسان ها هم وجود دارد و میتواند حتی منجر به کین توزی شود یعنی اگر ما تبعیض ببینیم نسبت به کسی که تبعیض می می‌دارد خشمگین می‌شویم و در بهترین حالت او را ترد می می‌کنیم و از خود می‌رانیم یعنی ما هم خود را کمتر از بقیه نمی‌دانیم و این تصاوی که با دیگران حس می‌کنیم خصلت دیگر تکاملی ماست که این بار باعث می‌شود از دیگران مطالبه عمل عادلانه و اخلاقی نسبت به خودمان داشته باشیم پس نه تنها به دلیل داشتن حس همدلی خود را با دیگران برابر می بینیم و تمایل پیدا می کنیم نسبت به آنها اخلاقی عمل کنیم بلکه به دلیل داشتن حس مصابات با دیگران از دیگران نیز توقع عمل اخلاقی و عادلانه در حق خودمان داریم. اگر یکی از اعضای جامعه بخواهد این مطالبه ما را نادیده بگیرد در صورتی که با خوشونت ما روبرو نشود حداقل با ترد از سوی ما روبرو می گردد. و همانطور که قبلا گفتیم گونه هوموسفینز و نیز بسیاری از نخستی ها حس ناخوشایندی نسبت به ترد شدن دارند و آن را تحمل نمی کنند ولی به عمل اخلاقی در درون گروه رضایت می دهند ولو اینکه آن را ریاکارانه انجام دهند حال با توجه به این ادالت طلبی گونه ما چگونه روحانیون ادیان جامعه شان را طبقه بندی می‌کنند و بدون اینکه از طرح شدن توسط دیگر اعضای گروه واهمه داشته باشند حقوق غیر برای طبقات مختلف و خودشان قائل می‌شوند روحانیون این طبقه بندی و این عدم مساوات را با ارائی یک جهان بینی به دیگران می‌پذیرانند آنها به مردم می‌باوراند که خدا یا خدایان چنین خواسته و یا قوانین هستی چنین است که بعضی بنا به اعتقادات و یا اعمال و یا طبقه ای که در آن به دنیا می آید و یا به واسطه نوع خلقتشان بر بعضی دیگر شرف و برتری ماهوی و سرشتی داشته باشند در واقع با این جهان بینی مردم قبول می که مثلا اصلا با طبقه روحانیت یا حاکمان و یا کاست های بالاتر یکی نیستند تا توقع حقوق همسان داشته باشند. در متون مقدس هم داستان‌ها و مثال ها و احکام و قوانین متعددی می وجود داشته باشد که این طبق بندی ها را تایید کند و میدانیم که مؤمنین متون مقدس و افراد مقدس را تحت حمایت و تایید نگهبان ذهنشان میدانند و آنها را زیر سؤال نمیبرند و در نتیجه پس از این ادالت طلبی قریزیشان محدود به اعضای همشأن و همتبقه و همجنس خودشان می شود. به این ترتیب ادیان و دستگاه های روحانیت آنها می توانند مبنای نظام اخلاقی جامعه را از حس مسابات بین همه اعضا که مبنای طبیعی اخلاق فرگشتی است به حس مسابات بین افراد همسنف و هم طبقه و همجنس دهد. و هر کدام از این اصناف و طبقات را نیز خودشان تعریف کنند و بدین سان طبقات بهره مند از حقوق ویژه حراسی از ترد و خشم و شورش اصناف و طبقات بی بهره نداشته باشند در مجموع می توان گفت ایمان دینی و دستگاه روحانیت در دورانی که حیات و توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه انسانی بیش از همه چیز بابسته به تسخیر زمینهای بیشتر بود به ترغی شبیه آنچه گفته شد نقش مهمی در توسعه هر جامعه ایفا می کرد عنوان آیا دین هنوز موجب توسعه جوامع بشری میشود گفتیم که از عهد باستان این طبیعت بود که منبع تغذیه ما بود و لذا بر سر منابع محدودش با یکدیگر میجنگیدیم با یک جانشینی اگر چه میزان قضا افزایش یافت اما تولید قضا همچنان به ظرفیت مشخص زمین های محدود بود و محدودیت مساحت این زمین ها همچنان باعث جنگ می شود. با به وجود آمدن پادشاهی ها و امپراتوری ها و اتحاد های نظامی اگرچه نسبت وقوع جنگ ها به اوایل یک جانشینی کمتر شد اما به هر حال همچنان توسعه اقتصادی بستگی مستقیم به میزان زمین تصرف شده داشت و از هر هکتار زمین هم میزان محدود و مشخصی قضا به دست می آمد. لذا همچنان هر قوم و نژاد و امتی که برآوردهش نشان می‌داد می‌توان زمین‌های قوم دیگری را تصرف کند دست به کار می‌شد چرا که راه بهتری برای توسعه و رونق و رشد و کسب ثروت بیشتر وجود نداشت اما با به وجود آمدن شهرها، پتانسیل جدیدی برای رشد و توسعه به وجود آمد. پیش از آغاز یک جانشینی، هر کسی می تقریبا همه وسایل مورد نیاز زندگیش را خودش می ساخت. در زندگی روستایی نیز تقریبا تمام وسایل و امکانات مورد نیاز هر فرد در همان روستا ساخته می شد. در شهرها، کارها تقسیم شد. و تا حد زیادی تخصصی گشت آنچنان که مثلا اگر کسی میخواست خانه ای بسازد هر قسمت خانه در کارگاهی ساخته میشد و چند فرد و گروه متخصص باید دست به دست هم میدادند تا یک خانه بنا شود هر متخصصی ممکن بود تکنیک ها و فناوری های کار خود را ارتقا بخشد و حتی اجزا و مراهلی به کارش اضافه کند آنچنان که نیازمند افراد متخصص دیگر هم بشود و در عوض محصولی بهتر، ظریفتر، زیباتر، کارآمدتر و مورد پسندتر ارائه دهد تا مشتریهای بیشتری داشته باشد و یا مشتریهای های را به سوی کالای ویژه‌ای که ارائه امدهد جلب کند. اما تا همین یکی دوغرن گذشته علا تخصصی شدن هرچه بیشتر این کارها تقریبا همچنان همه نیازهای اصلی هر ملک و مملکتی در همان ملک و مملکت و توسط متخصصین آن تأمین میشد. پس همچنان علاوه بر اینکه که زمینهای بیشتر و تصرف ممالک مجاور بهترین راه توسعه بود، جنگ با اقوام و ممالک همسایه خلالی در تولیدات پادشاهی سلطجو ایجاد نمی کرد. اما در یکی دو قرن اخیر مخصوصاً چند دهه گذشته کارها آنچنان تخصصی شده که دیگر برای تولید هر محصولی نه تنها به همکاری ده‌ها و صدها متخصص نیاز است بلکه هر کار تخصصی نیست در گوشهای از این دنیای خاکی و کره زمین صورت می‌گیرد و دیگر یک کشور نمی‌تواند به تنهایی تولید کننده همه محصولات مورد نیازش باشد اینکه این کشور چقدر بزرگ است و چقدر زمین تصاحب کرده چندان مهم نیست چرا که اولاً بیشتر تولیدات ربطی به زمین و سطح زیر ندارند بلکه محصول تکنولوژی هستند؟ ثانیان هر کشور دارای بالاترین مزیت برای تولید چند محصول محدود است و برایش به نیست جهت تولید بسیاری از محصولات دیگر اقدام کند اکنون دیگر محدودیت مساحت زمین چندان موجب محدودیت در تولید نمی شود و تکنولوژی در بسیاری موارد اجازه می دهد کالایی را در زمینی محدود برای تعدادی نامحدود از مشتری همه جهان تولید کرد. حالا دیگر تولید کنندگان کمتر به دنبال زمین و بیشتر به دنبال مشتری از سراسر جهان می گردند. هواپیمای Airرباس A380 ای از چهار میلیون قطعه تشکیل شده و این قطعات در 1500 شرکت، که در سی کشور مختلف قرار دارند، تولید می شوند و همه برای منتاج به فرانسه منتقل می گردند. در چنین دنیایی توسعه بر اساس تصاحب زمین نیست، بلکه بر اساس تجارت است. برای رونق هرش بیشتر این همه تولیدات تخصصی لازم است که محصولات تولید کنندگان در همه دنیا فروخته شود، و برای فروخت شدن این همه کالا باید که تجارت با همه دنیا صورت گیرد. برای تجارت دو چیز لازم است اول صلح و دوم اعتماد صلح بستر مناسب تجارت را فراهم می کند و اعتماد تجارت را تسهیل می نماید اعتماد یعنی چه و چه نقشی در تجارت دارد اعتماد یعنی این که یک نفر خود را در معرض آسیب از سوی دیگری قرار دهد. مثلا شخص الف از شخص ب وام طلب می کند و میگوید ظرف یک هفته پس می دهد. اگر شخص ب قبول نکند و پولی قرض ندهد، مشکلی برایش پیش نمی آید و آسیبی نخواهد. ولی اگر قرض بدهد، ممکن است شخص الف پول او را به راحتی پس ندهد. شخص به از لحظه ای که به خوشقولی شخص علف اعتماد می کند، خود را در معرض آسیب از سوی شخص علف قرار می دهد. چون ممکن است علف به قولش عمل نکند. حتی اگر شخص به به اندازه کافی چک و سفته و زمانت دریافت کند، باز هم ممکن است شخص علف بدقولی کند و او دچار نگرانی و فکر و خیال شود، و به قول معروف روح و روانش آزار ببیند و حتی مجبور گردد برای گرفتن پولش به مراجع قضایی مراجعه کند و انرژی و وقت خود را صرف پس گرفتن پولش کند. اینها همگی مسادیق آسیب هستند. می خواهم بگویم اگر شخص به بدانت شخص الف آدم بدقولی است و قابل اعتماد نیست حتی با گرفتن چک و سفته و زمانت هم، حاضر نیست به او پول قرض دهد این یعنی حتی اگر قوه قضاییه قوی قضایی قریب و عادل و های اجرای محکم وجود داشته باشد باز هم برای شکل گیری یک رابطه مالی و تجاری درجه ای از اعتماد مورد نیاز است ما هم در بین محصولاتی که می‌خریم آنکه کیفیتش قبلا ثابت شده و اعتماد ما را جلب کرده را ترجیح می دهید در معامله بین تجار نیز اعتماد نقش مهمی در شروع و ادامه رابطه تجاری بازی می کنند. وجود مراودات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیاد بین دو کشور باعث می شود تجار آن دو کشور حس کنند راحتتر تر با هم کار کنند و اگر مشکلی پیشاید روابط محکم و گسترده دو کشور حل آن مشکل را هرچه بیشتر تسهیل خواهد کرد بدین ترتیب مراودات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی درجه ای از اعتماد بین دو ملت را به وجود می آورد و مبادلات تجاری در این بستر رشد بیشتری می آورد در روش توسعه در دنیای امروز که بر پایه تجارت است بیگان سازی و غیر انسان سازی دیگران و دشمنی ها و خسومت های شده ایدولوژیک و جاودان نه تنها جایگاهی ندارد بلکه میتواند تواند باشد و شکلگیری اعتماد و در پس آن رابطه تجاری را دوچار دستنداز جدی کند و مانع رشد و تولید حد اکثری کشور شود و پتانسیل های یک کشور را برای رسیدن به حد اکثر ظرفیت تولیدش هدر داده و تقدیم شرکت ها و تولید کنندگان کشورهای دیگر کند. امروزه دیگر ایجاد بهانه برای جنگ و تئوریزه کردن شرور بودن دیگر کشورها و دیگر ملت‌ها و اقوام و برگزیده بودن ملت و امت و نژاد خودی که زمین ساز تنش و جنگ است نه تنها بستر توسعه و رشد و ترقی را می کند بلکه آن را از بین میبرد. عنوان دین و وضعیت دولت ملت گفتیم که جامعه به سبب ایمان دینی و طبقه روحانیت علاوه بر کسب پیروزی بر جوامع دیگر، دوچار طبقه بندی درونی میشد و هر طبقه دارای سهمی کاملا متفاوت در حکومت و ثروت و حائز حقوقی نابرابر با طبقات دیگر بود. تا زمانی که در همه دنیا همین روال برقرار بود، این طبقه بندی ها نه تنها نقطه ضعف جوامع نبود بلکه شاید بر سازماندهی جوامع و قدرت یافتن آنها و چیرگی بر جوامع دیگر تاثیر مثبت می‌گذاشت اما اکنون این سازوکار در جهان تغییر کرده و کشورها بر اساس ساختار دولت ملت شکل گرفتند. در ساختار دولت ملت همگی افراد کشور تحت عنوان شهروند و با حقوق قانونی برابر در درون یک مرز که به آن کشور گفته می شود، تحت حاکمیت یک دولت زندگی می کنند. البته وجود حقوق برابر بین شهروندان جزء تعریف دولت ملت نیست. اما بنا به طبیعت دولت ملت ها که اصرار دارند همه مردمشان را اعضای یک ملت واحد بخوانند و آنها را پیرامون مفاهیم ملیگرایی و منافع ملی متحد سازند دولت ملت‌های امروزی عملاً به سوی برابری حقوقی هرچه بیشتر بین شهروندانشان حرکت می‌کنند و برابری حقوق خاصیت ملازم دولت ملت شده است. بدین ساختار دولت ملت بر ساختار قدیمی طبقه بندی بر اساس جنسیت، سنف، کاست، نژاد و یا دین دارد و آن اینکه در ساختار قدیم بیشترین حمایت از حکومت و جنگ‌هایی که ترتیب می‌داد از سوی ترین طبقات صورت می‌گرفت یعنی از سوی همان نژاد و مؤمنینی که به نظر روحانیون و متون دینی برگزیده بودند و بیشترین حق را از هر چیزی داشتند اگر پادشاهی‌ها های قدیم مورد حمله قرار می‌گرفتند نیز همین گروه برخوردار بودند که بیشترین دفاع را انجام میدادند برای بقیه مردم حداقل از نظر اقتصادی و حقوقی فرق چندانی نمی کرد چه کسی بر آنها حکومت کند آنها به هر حال حقوق حد اقلی داشتند و کمترین بهره را از تولید میبردند و کمترین حمایت را از حکومت دریافت میکردند آنها بر اساس احکام دین و قوانین ملک امیدی به روزگار خوشتر نداشتند. اما در ساختار دولت ملت امروزی تقریبا همه مردم حقوقی برابر دارند و قانون شانسی تقریبا برابر برای همه آنها اعم از زن و مرد و نژادها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف فراهم می تا پیشرفت کنند و بهرهمند گردند. ساختار دولت ملت در کنار توسعه مبتنی بر فناوری و تجارت، اگرچه رقبت به جنگ و کشورگشایی و تصرف سرزمین همسایه را به حد میرساند، اما میل به دفاع در برابر حجوم بیگانگان را به حد اکثر میرساند و این پتانسیل را ایجاد می کند تا جمعیت، و اتحادی بزرگتر که شامل اکثریت بزرگتری از مردم کشور می شود در صورت مسلح گشتن و سازماندهی شدن ایستادگی نسبتا جانانه تری در برابر مهاجم بنمایند. در ساختار دولت ملت امروزی و توصیع مبتنی بر تجارت نه تنها طبقه روحانیت کار کرد خود را برای توسعه از دست می دهد بلکه طبقه بندیهایی که روحانیت به باورهای دینی در سطح جامعه انجام می دهد و حقوق نابرابری که طبق سنت دینی برای زن و مرد و اقلیت های دینی و مذهبی و افراد برده و آزاد تعریف می کند با اساس ساختار دولت ملت در تضاد می افتد از یک سو برای به حد اکثر رسیدن قدرت دولت ملت همه باید خود را از لحاظ قانونی به یک اندازه صاحب حق در مندی از ثروت و امکانات و مزایای شهروندی بدانند تا کشور را متعلق به خود و خود را متعلق به کشور ببینند از سوی دیگر روحانیت بنا به طبیعت کهن دین این برابری حقوق را به راحتی بر نمیتابد و با اعتقادات دینیاش در تزاد مییابد در ساختار دولت ملت حضور دستگاه روحانیت در واقع حضور جمعیتی نسبتا سازمان یافته است که باورها و جهانبینی اغلب افرادش با ساز و کار دولت ملت زاویه دارد منظور از جمعیت سازمان یافته گروهی است که افرادش یکدیگر را میشناسند و با هم رابطه دارند و به هم اعتماد دارند و بعضی از بعضی دیگر فرمان میپذیرند و بین خود سلسله مراتب دارند. نظر یوال نواری نویسنده کتاب انسان خداگونه این است که یک گروه سازمان یافته ی چند صد نفری میتواند بر میلیون ها انسان حکومت کند. ولو آنکه آن میلیون ها انسان با آن گروه مخالف باشند. آن میلیون ها انسان یکدیگر را نمیشناسند، و به هم اعتماد ندارند و در بین خودشان سلسله مراتب ندارند و اینطور نیست که بعضی از بعضی دیگر اطاعت کنند و نهایتا همه از یک نفر پیروی نمایند پس نمیتوانند به سمت هدف مشترکی که دارند حرکت کنند و کار موثری انجام دهند در واقع این ها نفر در برابر آن چند صد انسان سازمان یافته ضعیف و تنها هستند اتحاد با شعار به دست نمی آید. بلکه با سازماندهی به دست می آید. و سازماندهی کاری است که با گذشت زمان و پس از شهلگیری اعتماد و سلسله مراتب در بین اعضای همکار و همهدف حاصل می گردد. سازمان یافتگی می در احزاب وجود داشته باشد. در دل دستگاه روحانیت نیز این سازمان یافتگی ها می شکل بگیرد، و اده زیادی از روحانیون جوان از یک روحانی پیش که اعتبار و قداست دارد و وجوهات شرعی بیشتری میگیرد و بین جوانترها تقسیم می کند خیروی نمایند و قدرت و نفوذ او را بین مؤمنین بست دهند و طرفداران پروپاقورسی برای او دست و پا کنند و به سازمان خود اضافه نمایند لذا با توجه به این پتانسیل دستگاه روحانیت و جهان بینی های ویژه‌ای که از ادیان کهن به روحانیون به ارث رسیده که بر اساس آنها با برابری همه شهروندان کشور مخالفند میتوان گفت که همیشه تهدید بالقوه‌ای از سوی طبقه روحانیت نسبت به دوام ساختار دولت ملت وجود دارد اگرچه غیرممکن غیر نیست گاهی برخی روحانیون بنا به دلایل و اعتقادات شخصی از ساختار دولت ملت کشورشان حمایت هم بکنند و با حقوق برابر همه شهروندان با هر اعتقاد و هر طبقه و هر جنسی موافق باشند سازمان های شکل گرفته در داخل دستگاه روحانیت همیشه میتوانند در زمانی که خلع قدرت در دولت ملت پیش میآید، قدرت را در دست بگیرند فکر می‌کنم حوادث پس از انقلاب 57 در ایران را می‌توان نمونه‌ای از وقوع این امکان به حساب آورد. طالبان افغانستان نیز گروهی سازمان یافته از روحانیون بودند که بخت مجهز شدن به سلاح را یافتند و پس از یارگیری گسترده از بین طرفداران خود تا کنون دو بار کشور افغانستان را به تصرف خود درآوردند. گرامیان همینجا در صفحه 158 فایل آوایی یازده از کتاب فیزیولوژی ایمانو به پایان میبریم. تا درودی دیگر بدرود.